سيوية كمين حديث فرمدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إيايا والفراج رسول الله صلی الله علیه و سلم از خودش شروع میکنه ای ایا از خودش من خودم یعنی بر خودشو بر حذر میشوره از اون فاصله هایی که سر نماز میشه منظور در نماز ایایا و الفورا یعنی بر حذر باشید از اون فاصله هایی که سر نماز میشه یعنی فاصله ها را ببندیم پا را به پا بچسبونیم این توصیه رسول الله صلی الله علیه و سلام حفظ ظاهر رسول الله صلی الله علیه و سلام میفرماند لا تسوون صفوفکم او لا يخلفن الله بین قلوبکم صفات را آراسته میکنید درست میکنید مرتب میکنید پا را به پا میچسبونید یا اینکه الله بین قلوب خود اون تفرقه بیاندازه. بله بین ها تفرقه می‌افته وقتی که یک شخص از شخص دیگه فرار که به قل اون فلانی نمی‌خاطر نماز بخونه. به خاطر کبر غرور داره یا به خاطر اختلاف بر سر دنیایی که با فلانی داره. شخصی را رسول الله صلی الله علیه و دیدن که ثروتمند بود اومد مد کنار فخیر ایستاد پیرهنش را یک کم کشید کنار از اون فاصله بگیر از اون شخص فقیر. رسول الله میشه میگه ترسید که فقرش بهت برسه. ترسید که فقرش بتنه برخورد بکنه از اون فقرش بهت بیاد. الله اکبر. تاشکین میشه رسول الله صلی اللہ علیه و سلم در مقابل این فاصله ای که ایجاد میکنه این شخص به خاطر کبرش و غرورش بله باید پاها به جس بشه، باید فقیر و تاجر کنار هم دیگر سر نماز بیسن چون همه بنده ی اللهیم. چون اینجا می بندگیمون رو به الله ثابت بکنیم ما رو به نماز خون، فراخون، جلوه الله میخوام خوام الله متکبره و کبر و غرور رو باید بیرون از مسجد بندازیم نه که همیشه بواد دفنش بکنیم مثلا. نه بواد مؤمن در قلبش ذره از کبر باشه چون کسی که متکبر وارد بهش نمیشه. حالا بحث کبر و بحث غرور و بینی و خودرایی و اینا جای خودش داره. اینجا بحثش نیست ولی اون چیزی که من اینجا مد نظرم هست. اینجا توصیه‌ی رسول الله صلی الله علیه و آله وقتی که از خود شروع می‌کنه میگه برحذر میشورم خودم رو از این فاصله ها یعنی شما هم رو بر برحذر میشورم از این فاصله ها بواظب باشید. در روایتی که رسول الله میگه میبینم که صفی که توش فاصله هست میبینم که شیطان همچون بزی وسط این صفا داره شیطنت میکنه. برحذر باشین پس عدم آراستگی این صف ها سبب میشه که قلبمون ناآراسته بشه. اختلاف بین قلبامون بیفته. پس ظاهرمون چه در نماز و خارج از نماز اصلاح بکنیم تا بین میون قلبهایمونم اصلاح بشه. و قلب آرسته و درستی داشته باشی بر باشی از اون فاصله‌ای که میفته یک از اصحاب اگر اشتباه نکنم انس رضی الله عنه که سنت چنان غریب شده در زمانی که الا تابعین تازه مسلمان‌ها زیاد شده بودن میگه که اگر پا تو به پای شخصی نشستی سر نماز میگه که این همانند میشه که آفتاب به سرش خورده یک علاق آفتاب دیده میشه که آفتاب به سرش و با پاهاشو تو رو میزنه و پاهاش پاهاشو عقب میکشه و از تو فاصله میگیره این خلاف سنته بلکه اون چیزی که توصیه سنت هست اهمیت دادن به ظاهر و اهمیت دادن به صفحای نماز و چسباندن صفها و بدونیم که فاصله ای از اون نماز کاسته نمیشه اون فاصله ها از بین برده نمیشه مگر اینکه اون فاصله ها در روز قیامت تبدیل نیکی ها بشن کسی که اون فرجه ای اون فاصله را ببنده الله فاصله هایی که در اون آخرت در مقابل بقول معروف در اون کوتاهی هایی که داره در روز قیامت الله اون کوتاهی هاش رو پر میکنه الله همه ما رو ببخشه و کوتاهی ما رو همه پروردگار یکتاب و عفو بخششش بیامرزه و ببخشه